دوستان، وقتی امروز وارد کتاب خروج میشیم، متوجه میشیم که قوم خدا یک مشکلی دارن. اونا برده هستن و به یک ناجی نیازمندن. موسای که معلم ما، از او به عنوان بزرگترین مرد کتاب مقدس یاد میکنه، همون ناجیه. در حالی که امروز بیشتر راجع به پسر فرعون که تبدیل به یک نبی خدا شد مطالعه میکنیم. بیاید به معلممون ملحق بشیم. ساختن کسی از هیچ کس به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش آمدید ضمن بررسی عهد قدیم نگاه دوباره به کتاب خروج خواهیم داشت امروز کتاب خروج را از نظر تاریخی بررسی می‌کنیم امروز میخوام که به قلب پیغام کتاب خروج بپردازیم همین که به این کتاب میرسیم بر چند چیز متمرکز می‌شیم برای مثال بر قوم خدا متمرکز می‌شیم قوم منحصر به فرد خدا که به ملت منحصر به فرد خدا گسترش پیدا کرده که توسط اون خدا میخواد وارد این دنیا بشه در حالی که به کتاب خروج میرسیم، چیز دیگه ای که میخوام بر روش تمرکز کنیم مشکل بزرگی هست که قوم خدا دارن مشکل بردگی این قوم در مصر بودن و آنچنان افزایش یافته بودند که تهدیدی برای فرعون به حساب میومدند. و او اونها رو به بردگی گرفته بندگی سخت ظلم حقیقی اعمال شاقه که بر این مردم تحمیل میشد مشکلی بود که باید در کتاب خروج حل میشد. کلمه خروج به معنی برون رفت هست. پیغام کتاب خروج در واقع اینه. راه برون رفت از این بردگی چیه؟ این بردگی اولا یک بردگی واقعی بود و داستان نجات اونها از بردگی یکی از بزرگترین معجزات کتاب مقدس هست. اون داستانی واقعیه. اون تاریخیه. اون بزرگترین که تا کنون بر روی زمین واقع شده. چیزی بین دو سه میلیون نفر از بردگی نجات پیدا کردن. این چطور واقع شد؟ چگونگی وقوع آن و مسائل مربوطه به آن پیغام مهیج کتاب خروج هست؟ به صورت کاربردی به علاوه تاریخی بودن، کتاب تمثیلی هم هست و حقایق تمثیلی زیادی داره که در زندگی ما کاربرد واقعی داره. کاربردش اینه، ما هم برده هستیم. کاری رو که می خواهیم انجام بدیم انجام نمیدیم. ما کاری رو می کنیم که باید بکنیم و اگر کاری رو می کنیم که باید بکنیم و کاری رو که می‌خوایم نمیتونیم بکنیم ما آزاد نیستیم اگر آزاد نیستیم ما هم برده هستیم و نیاز به چاره داریم لازمه که از بردگی گناه رها بشیم کلمه نجات که همه ما باهاش آشنا هستیم در واقع همون معنی رو میده مخصوصا در عهد قدیم وقتی شما کلمه نجات رو میبینید یا کلمه رهایی رو، اون هر دو یک کلمن. یک معنی واقعی هست که در اون نجات به معنی رهایی از گناه هست. نه تنها از مجازات گناهان حال گذشته، بلکه از قدرت گناه. یوحنا آخرین کتاب کتاب مقدس رو به کتاب مکاشفه عیسی تقسیص داده. با این کلمات، به او که ما را دوست داشت و ما را از گناهانمون رها کرد، و ما را پادشاهان و کاهنان ساخت نجات مربوط به محبت خداست که وارد زندگی شما میشه اون مربوط به درک شما از اینه که خدا اونقدر شما رو محبت کرد که یگان پسرش رو به خاطر شما داد وقتی محبت خدا را آنچنان که هست درک میکنید که برای شما و نجات شما به کار رفته نه تنها از گناهتون نجات خواهید یافت به این مفهوم که شما از مجازات گناه گذشتتون یا حتی حال رها شدید. بلکه شما از قدرت گناهتون هم آزاد شدید رهایی از قدرت گناه یا از بردگی گناه پیام صمیمانه کاربردی کتاب خروج هست. سومین چیزی که در کتاب خروج باید روش تمرکز کنیم چیزی که بهش نبی میگیم در کتاب خروج شما نه تنها داستان یک قوم و مشکلاتشون رو دارید بلکه نبی هم دارید موسی نبی وقتی بر مردان خدا در کتاب مقدس توجه میکنید، به اعتقاد من این مرد یک سر و گردن از همه بالاتر میایسته به اعتقاد من بدون هیچ قید و شرطی موسی یکی از بزرگترین مردان خدا در کتاب مقدس است شما از بزرگی این مرد موسی قدردانی خواهید کرد اگر به سهم او در کتاب مقدس فکر کنید چرا که قبلا گفتیم ابراهیم پدر قوم خدا شد یعقوب به اونها نام داد یوسف اونها رو نجات داد اما موسی فکر کنید موسی برای قوم خدا چیکار کرد در کتاب خروج این ثبت شده است اولاً موسا به این قوم برده چیزی رو داد که هر بردهی بیش از هر چیزی میخواد. آزادی. اکثر ما نمیدونیم که برده بودن چیه و یا نداشتن آزادی چیه. خیلی ها در زندان هستند و آزاد نیستن. وقتی اونا در زندان هستن چیزی که اونها رو تحلیل میبره و اونها را اسیر میکنه اشتیاق برای آزادی هست. وقتی موسا به اونها آزادی داد به این بردگان چیزی رو داد که بیش از هر چیز دیگه ای نیاز داشتند بعد موسی به اونها چیزی رو داد که قوم تازه آزاد شده بیش از هر چیز دیگه ای در دنیا نیاز داشتند حکومت یا قانون توسط موسا این موسی بود که به اونها قانون و حکومت داد به لحاظ روحانی موسی به قوم خدا دو چیز داد که فوقالعاده گرانبها بودند او به اونها کلام خدا رو داد و اونها پرستش رو داد یه لحظه به این فکر کنید پنج کتاب اول کتاب مقدس به کتاب شریعت یا تورات معروفه. پنج کتاب اول کتاب مقدس در کوه سینا به موسی داده شد. او بارها به بالای کوه رفت در پاسخ به دعا و روزه او خدا به او پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و تصنیه رو داد. حدود پانصد قانون در پنج کتاب کلام خدا هست. همینطور تاریخ زیادی هم هست. قوانین شریعت زیادی هست که این پنج کتاب به اونها به عنوان شریعت خدا اشاره کرده. یا شریعت موسی یا کلام خدا کلام خدا به ما نشون میده که چطور باید زندگی کنیم انسان تنها محزنان زیست نمی کند بلکه به هر کلام که از دهان خدا صادر می شود این هدف شریعت است. پنج کتاب اول کتاب مقدس سنگ زاویه کتاب مقدس هستند چون که آنها کلام خالص خدا رو به ما می دن. این کلامی هست که انبیا موعظه کردن این کلامیه که در کتابهای تاریخ اونها گاهی اطاعت کردند و گاهی ناطاعتی کردند. اونها گاهی نمونه هستند و گاهی برای من و شما هشدار هستند که به گفته پولس بر آن کرانهای جهان پدید آمده. کلام خدا، کلام خالص خدا در پنج کتاب اول کتاب مقدس هست. و اون کتابها توسط موسی آمدند. اگه کمکی رو که موسی به قوم خدا کرد ملاحظه کنیم، میتونیم بگیم موسا کلام خدا رو به قوم خدا داد. چه کمکی بزرگتر از دادن کلام ناب خدا کسی میتونه به قوم خدا بکنه موسی همینطور به اونا پرستش رو داد یک سوم آخر کتاب خروج مثل کتاب مصالح به نظر میرسه وقتی مردم کتاب مقدس رو میخونن، کتاب پیدایش رو خیلی عالی میخونند و پیش میرن مخصوصا مطالعه شخصیت ها رو بعد به داستان خروج میرسند، رهایی از مصر اونجا رو هم با اشتیاق میخونند. اما وقتی به یک سوم آخر کتاب خروج میرسن کتاب شروع میکنه به شرح یک سری مشخصات اگه شما یک کتاب مشخصات مساله ساختمانی رو بخونید برای کسی غیر در بخش ساختمان کتاب زیاد جذاب و مطالعه دلپذیری نخواهد بود یک سوم پایانی کتاب خروج یک چنین کتابی به نظر میرسه پس اغلب وقتی مردم به کتاب لاویان می رسن، دیگه واقعا از خوندن دست میکشن اونا وقتی به این کتاب می رسن دیگه نمیتونن ادامه بدن چرا ما وقتی به سلس پایانی کتاب خروج و کتاب لاویان میرسیم گیر میکنیم؟ چون نمیدونیم وقتی خدا این کلام ناب رو به موسی میداده به او مکاشفه داده. خدا میخواست به موسی نشون بده چطور انسانهای گناهکار میتونن به یه خدای قدوس نزدیک بشن برای نجات، برای هدایت و همینطور برای ارتباط نزدیک. در کتاب خروج خدا به ما نشون میده که چطور ما را از اصارت و سلطه گناه نجات میده. در کتاب خروج مخصوصاً در سلس پایانی خدا یکی از همون اولین اهداف اون نجات رو به ما نشون میده که پرستش او هست. خدا میخواد ما رو بشناسه و میخواد ما او رو بشناسیم. او ما رو دعوت میکنه که بیاییم و با او رابطه داشته باشیم و او رو بپرستیم. لازمه که برای پرستش تعلیم بگیریم. ما نمیدونیم چطور باید بپرستیم. رسولان نزد عیسی آمدند و گفتند: خداوندا به ما بیاموز چگونه دعا کنیم. اونا نمی دونستن چطور دعا کنن اشخاص زیادی هستند که نمیدونن چطور دعا کنن و چطور پرستش کنن در شکل‌های پرستشی که امروزه در کلیساها مخصوصا کلیساهایی که بهشون کلیسای عبادتی میگیم کشیش اغلب اوقات رو به محراب و پشت به مردم میسته این کلیساها و کنیسه در ایمان یهودی از نظر پرستش ریشه در این خیمه کوچک پرستش داره که خدا به موسی یاد داد که بنا کنه وقتی به کتاب لاویان برسیم به جزئیات این خیمه پرستش خواهیم پرداخت. اگه این خیمه پرستش کوچک رو می دیدید فکر می کردید مثل یک خیمه کوچک سیرکبازان سیرک بازان هست. احتمالا زیاد بر شما تأثیر نمی زاش. اون خیلی رنگارنگ رنگ بود. همه چیز در این خیمه کوچک پرستش معنی بزرگی داشت. ما وقتی می از نزدیک به اون خیمه پرستش نگاه می کنیم می بینیم اون تصویر بزرگی از عیسی مسیحه. همه اینها کمک ازیم رو که موسا به قوم خدا کرد نشون میده. او به ما کلام خدا رو داد. به ما نشون داد چطور زندگی کنیم و به ما پرستش رو داد. موسی به ما یاد داد که چطور پرستش کنیم. پس سهم او بسیار عظیم بود. من میخوام به زندگی موسی از این جنبه نگاهی بندازیم. بزرگترین مشکل در کتاب خروج مشکل بردگی هست. چاره رهاییه. این قوم چطور از این بردگی که در مصر تجربه میکردن رها خواهند شد. اونا اگه می‌خواستند از بردگی رها بشن به یه منجی نیاز داشتند خدا موسی رو فراخواند که او منجی باشه اگه شما زندگی موسی رو به عنوان منجی قوم خدا در کتاب خروج مطالعه کنید خیلی جالب خواهد بود به لحاظ کاربردی همونطور که کتاب خروج مثالی از رهایی یا نجات هست زندگی موسی هم مثالی بزرگ از اینه که چطور میشه یک منجی بزرگ بود رها کردن خودتان از قدرت گناه در زندگیتون بزرگترین تجربه ای که میتونید در زندگی داشته باشید. دومین تجربه بزرگ در زندگی منجی بودن برای کس دیگه‌ایه. وکیل انسان بودن یا وسیله ای برای رهایی دیگران شدن. کتاب خروج این رهایی یا نجات رو به تصویر میکشه موسی چیزی رو که مربوط به منجی بودن هست به تصویر میکشه من به زندگی موسی اینطور نگاه می کنم. دی ال مودی گفته موسا 120 سال زندگی کرد. و اون 120 سال رو در سه دوره چهل ساله زندگی کرد. در هر کدام از اون دوره‌های چهل ساله زندگیش خدا به موسی یک درس داد. چهل سال طول کشید تا هر درس رو بیاموزه. در چهل سال اول زندگی موسی به قول مودی خدا به موسی این درس رو یاد داد. موسی تو هیچ کس نیستی. چهل سال طول کشید تا این رو یاد گرفت که موسی تو هیچ کس نیستی. در طی شرایط زندگیشو در قصر فرعون بزرگ میشد. شاید به دلیل اینکه او در قصر فرعون بزرگ میشد، احتمالاً فکر کرده بود که کسی هست. اما در حدود زمانی که او چهل ساله بود، خدا ظاهراً موفق شد که او را متقاعد کنه که او هیچ کس نیست. و به قول دیل او باید قبل از اینکه یک منجی بشه این رو یاد می‌گرفت. درس دومی که خدا به موسی یاد داد در چهل سال دوم زندگی او بود. موسی تو کسی هستی. چهل سال طول کشید تا خدا درس دوم را به موسی بده. موسا تو کسی هستی چون که من تو را انتخاب کردم در پایان چهل سال دوم موسا روزی رفت و به رنج هایی که بردگان یهودی می کشیدن نگاه کرد در حالی که می‌دونست خود او هم یک برده یهودی بود و میگه او قصه می‌خورد و از رنجی که اونها می‌بردند عمیقن احساس دلسوزی می‌کرد از چارلز کلسون رئیس خدمات برای زندانیان شنیدم که میگفت اگر خودش شخصا در زندان نبود امروز دلسوزی جدی برای زندانیان نداشت زمانی که در زندان بود و رنج و صدماتی را که زندانیان داشتند تجربه می کرد این حس دلسوزی و علاقه به افراد پشت نرده ها در او شکل گرفت. همون چیز برای موسی هم اتفاق افتاد. او احتمالاً به اون بردگان یهودی نگاه کرده بود و چیزی حس نکرده بود. بعد فهمید که او هم یکی از آنان هست و این تفاوت بزرگی به وجود آورد که چنان تأثیری بر موسی داشت که وقتی او رنج اونها رو دید، یک معمور مصری دو کشت این پایان چهل سال اول او بود تقریبا گویی خدا اونجا به او ظاهر شد و به او گفت نه ناموسا این راه انجام این کار نیست حالا پس عکس تو روی هر درختی در مصر نصب خواهد شد تو دشمن شماره یک خلق خواهی بود موسی تو اینجوری کسی رو نجات نخواهی داد بیا به مدت چهل سال به دانشگاه بریم و در این باره فکر کنیم خدا موسی رو به اعماق بیابان برد به مدت چهل سال موسی به دانشگاه خدا رفت در طی چهل سال تمام خدا موسی را با یک موضوع درگیر کرد. بردگی قومش و اینکه اونها چگونه آزاد خواهند شد. در پایان چهل سال دوم موسا تجربه ای داشت. او در بیابان بود و شعله ای مشتعل شد که چیز غیرعادی در اونجا نبود. معمولا اونها در عرض 5 ثانیه می می‌شدند و از بین می‌رفتند. این بار نه تنها بوته از بین نرفت بلکه به سوختن ادامه می‌داد. موسی برگشت تا ببینه بیایید از کتاب خروج باب سه با هم بخونیم و اما موسی گله پدرزن خود یترون کاهن مدیان را شبانی می کرد و گله را بدان طرف صحرا راند و به هوریب که جبل الله باشد آمد و فرشته خداوند در شعله آتش از میان میانه بر بروی ظاهر شد و چون او نگریست اینک آن بوته با آتش مشتعل است اما سوخته نمیشود. و موسی گفت اکنون بدان طرف شوم و این امر غریب را ببینم که بوته چرا سوخته نمی شود. چون خداوند دید که برای دیدن مایل بدان سو می شود خدا از میان بوته به وی ندا در داد گفت ای موسا ای موسا گفت لبیک لب گفت بدین جا نزدیک بیا نعلین خود را از پایهایت بیرون کن زیرا مکانی که در آن ایستاده ای زمین مقدس است و گفت من هستم خدای پدرت خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب، انگاه موسا روی خود را پوشانید زیرا ترسید که به خدا بنگرد. و خداوند گفت هر آینه مصیبت قوم خود را که در مصرند دیدم و استقاسه ایشان را از دست سرکاران ایشان شنیدم. زیرا غمهای ایشان را میدانم و نزول کردم تا ایشان را از دست مصریان خلاسیده و ایشان را از آن زمین به زمین نیکو و وسیع براورم. به زمینی که به شیر و جاری است به مکان کنانیان و هتیان و اموریان و فرزیان و هفویان و یبوسیان. و الان اینک استقاسه بنی اسرائیل نزد من رسیده است و ظلمی رانیست که مصریان بر ایشان می دیدم. پس اکنون بیا تا تو را نزد فرعون بفرستم و قوم من بنی اسرائیل را از مصر بیرون آوری. موسی به خدا گفت من کیستم که نزد فرعون بروم و بنی اسرائیل را از مصر بیرون آورم؟ گفت البته با تو خواهم بود و علامتی که من تو را فرستاده این باشد که چون قوم را از مصر بیرون آوردی خدا را بر این کوه عبادت خواهید کرد موسا به مدت چهل سال به دانشگاه رفته بود و این فارغ تحصیلی او بود او در بوته مشتعل از دانشگاه فارغ تحصیل میشد. این چیزیه که خدا گفت موسا تو مشکل رو دی ای و این قابل تحسینه بسیاری از مردم هرگز مشکلات رو نمیبین تا زمانی که به زندان ها برن یا به بیمارستان روانی ما مشکلات رو نمی بینیم به خاطر اینکه مشکلات امروزه در لفافه پیچیده میشه اونها خارج از دید و فکر هستن پس خیلی ها مشکل رو نمی بینن و خدا به موسی گفت 'موسی تو مشکل رو دید ای و این قابل تحسینه تو چیزی حس کرد احساس دلسوزی داری و این عالیه تو میخوای کاری بکنی و این خوبه. اما موسا مهمترین چیز اونی نیست که تو میبینی. چیزی نیست که نگرانشی. اونی نیست که تو میخوای کاری برش بکنی. موسا مهمترین چیز اینه. من اون مشکل رو دیدم و به فکر مردم هستم. من رحم کردم و میخوام کاری بکنم. من باید کاری بکنم. در این نقشه شما شاید فکر میکنید موسا باید گفته باشه اوه این عالیه. من مشغول چراندن گوسفندانم خواهم شد. اما بعد خدا گفت نزد من بیا و من تو را به نزد فرعون خواهم فرستاد تا بتونی ناجی این مردم باشی. در اینجا موسا میگه من کیم؟ چرا منو انتخاب کردی؟ ببینید این پایان چهل سال دوم زندگی موسا هست و خدا حالا سعی داره او رو برای این درس متقاعد کنه که تو کسی هستی. در چهل سال اول خدا به او یاد داد که تو هیچ کس نیستی. در چهل سال دوم، خدا به موسی یاد داد که او کسی هست. حالا وقتی چهل سال سوم زندگی موسی شروع میشه، همه ما میدونیم و این داستانی محیج است، کتاب خروج هست که خدا میخواد به موسی این درس رو یاد بده. دی علم و دی خدا میخواد به موسی یاد بده با کسی که به او یاد داده که هیچ کس نیست چیکار میتونه بکنه. ما به این فروتنی میگیم. اصلا فروتنی چیه؟ شهر دادنش خیلی سخته. شنیدم که به یه واعظی از طرف جماعت کلیسا مدال فروتنی داده شده بود اما اونا مجبور شدند که اونو پس بگیرند چون که او همیشه اون رو به سینه میزد. می میتونیم بگیم چیزی که خدا میخواست در موسا خلق کنه که موسی بتونه ناجی قومش باشه همون فروتنی بود راه دیگه ای که برای گفتن همون چیز هست می تونه گفتن این باشه برای اینکه موسی بتونه ناجی بزرگی بشه که بتونه قومش رو از مصر و فرعون نجات بده باید به او یاد میداد که موسی تو هیچ کس نیستی چون اگر بدونی که واقعا کسی نیستی اون وقت کسی هستی بعد میتونم به تو نشان بدم با کسی که به او گفتم هیچ کس نیست چه کار میتونم بکنم ایا تا حالا فکر کردید که چرا موسا اون سال رو کرد من که هستم یه دقیقه بهش فکر کنید موسی کی بود اگه شما میخواستید کسی رو بفرستید که اون قوم رو نجات بده موسی رو میفرستادید اولا کتاب مقدس میگه او یک قاتل بود شما یک قاتل دشمن ای که جامعه رو به مصر برمیگردوندید جالب که سه نفر از بزرگترین مردانی که خدا به کار گرفت قاتل بودن. پولس قاتل بود، داوود قاتل بود، موسا هم یک قاتل بود. با این حال خدا از این مردان استفاده کرد. آیا شما یک قاتل رو انتخاب می‌کردید؟ حالا واضحه که موسا یک یهودی بود. در کتاب پیدایش خوندید که مصریان هیچ رابطه‌ای با یهودیان نداشتند. تابیزه نژادی از زمان آفرینش بشر بوده مصریان حتی با یهودیان غذا هم نمی شما یک یهودی رو میفرستادی بعد در کتاب پیدایش میگه چیزی که برای یک مصری بیش از یک یهودی نفرت انگیز بود یک شبان بودنه اونها از شبانها نفرت داشتند اونها دیدگاهی از شبانها داشتند، چون که اونها داخل گله ها بودند اونها گاو رو می پرستیدند اونها از شبانها نفرت داشتند چون اونها گاوها رو می و از گوسفند و شبانها نفرت داشتند. بعد خدا به موسی گفت آن چیست در دست تو؟ و موسی گفت عصا و خدا گفت آن را در مقابل فرعون بر زمین بینداز. این او را واقعا عصبانی خواهد کرد. بذار بدونه که تو یک شبانی. پس او یک یهودی بود، یک قاتل بود، یک شبان بود و یک فرزند ناسپاس بود که چهل سال رو در قصر فرعون سپری کرده بود. و قتل شناسی با کشتن یک مامور مصری نشان داده بود آیا او واقعا از نظر خدا شایسته بود که منجی بشه در چنین شرایطی واضحه که جواب همه این خواهد بود نه او شایسته نبود انتخاب شخص درست برای انجام شغل مهم چیزی که یک رئیس رو موفق میکنه یا ناموفق بسیاری از رؤسا موفق میشن و بسیاری شکست میخورند چون که قابلیت انتخاب شخص صحیح رو ندارد. وقتی رئیسی سعی می‌کنه که شخص صحیحی رو انتخاب کنه که برای او کار کنن، سعی می‌کنه که افراد بسیار شایسته رو انتخاب کنه. در کتاب مقدس شما می‌بینید که خدا کسانی مثل موسی رو برای انجام کارهای خیلی مهم فرا می‌خونه. مثل نجات دهنده برای قوم خودش از اسارت مصریان. فقط به نظر می‌رسه که تقریبا خداست که سعی می‌کنه کسی رو انتخاب کنه که کمترین شایستگی رو داره. اگه شخصی واقعاً باور کنه که شایسته نیست و واقعا باور کنه که خدا و فقط خدا میتونه نجات بده اون وقت میتونه کسی باشه که خدا او رو به کار گرفته که به وسیله او معجزه بزرگ نجات رو به عمل بیاره وقتی شما به فراخانی و ماموریت موسی توجه کنید میتونید اون حقیقتی رو که به وضوح تصویر شده ببینید اگه امروز ما بخوایم که خدا از ما برای نجات مردم استفاده کنه اگه ما مایلیم که ببینیم دوستانمون و کسانی که دوستشون داریم از بردگی گناه آزاد شدن شاید کسانی که میشناسیم برده ی گناه هستند اگر ما بخوایم تبدیل به وسیله بشیم برای نجات اونها این رو فراموش نکنید ما کسی نیستیم که اونها رو نجات خواهیم داد فقط خدا میتونه نجات بده یادم وقتی که در دانشکده بودم یکی از استادان به من میگفت وقتی که قصد داری کسی رو به مسیح هدایت کنی وقتی قصد داری کسی رو به تجربه نجات هدایت کنی هرگز فراموش نکن جدای از روح تلاش بیهوده میکنی. مطلقاً غیر ممکنه فقط خدا میتونه این کار رو بکنه اگه خدا شما رو فرا خونده که یک ناجی بشید همونطور که موسی رو فراخوند که ناجی باشه واضحه که او باید در شما فروتنی به وجود بیاره من فکر کنم که تعریف خوبی برای فروتنی درک این هست که چه کسی این معجزه رو به ظهور خواهد رسانید درک این هست که چه کسی این معجزه رو به ظهور خواهد رساند من این رو درک نکرده بودم اما کتاب مقدس این رو از اول تا آخر یاد میده که این نقشه خداست که قدرت خدا رو در قوم خدا به کار بگیره که هدفش رو بر اساس نقشه خدا به انجام برسونه این رو دوباره تکرار میکنم این نقشه خداست که قدرت خدا رو در قوم خدا به کار بگیره که هدفش رو بر اساس نقشه خدا به انجام برسونه در عهد ایسا یکی از بزرگترین مثال به ما میده وقتی که با شاگردانش به یک باغ میره او تاکی رو با شاخه هاش پایین می کشه که بهش دسترسی پیدا کنه و میوه در انتهای شاخه ها هستند بعد این درس بزرگ رو میده که اخیرا در بالخانه به شاگردانش داده بود در بالخانه به نوعی به این مردان می گفت این نقشه خداست که قدرت خدا رو در قوم خدا به کار بگیره که هدفش رو بر اساس نقشه خدا به انجام برسونه او به اونها گفت شما مجذوب کارهایی که من می کنم و حرف هایی که من میزنم حالا بذارید چیزی راجع به کارهام و حرفهام بگم کارها و سخنان من از رابطه من با پدر سرچشمه می‌گیرند من و پدر یکی هستیم و تمام کارهایی که می‌کنم و تمام سخنانی که می‌گم در نتیجه این حقیقت که من و پدر یکی هستیم در دنباله سخنانش اضافه کرد من شما را ترک خواهم کرد و وقتی شما را ترک کنم روح القدس خواهد آمد وقتی روح القدس میاد اگر شما در اتحاد با روح قدوس باشید همانطور که من در اتحاد با پدر هستم بعد او به شما امکان خواهد داد که کارهای مرا بکنید و حرفهای مرا بزنید به طور خلاصه او به این مردان گفت کارهای خدا بر روی زمین توسط من انجام شده و کلام خدا بر روی زمین توسط من بیان شده چون که من و پدر یکی هستیم اگر شما با روح القدس یکی باشید کارهای من توسط شما انجام خواهد شد و حرفهای من توسط شما گفته خواهد شد با این آموزه او شاخه تاک رو پایین کشید که میوه بسیاری بر روی شاخه داشت و گفت اون مثل اینه میبینید که چقدر این شاخه ها با این تاک در هماهنگی هستند؟ می بیننید که چطور به این تاک وصل شده اند این به این شاخه ها امکان میده که میوه بیارن در این مثل دو چیز رو میگه او میگه بدون من شما نمیتونید کاری بکنید اما همینطور میگه بدون شما هم من کاری نخواهم کرد ببینید میوه ها بر روی تاک رشد نمی کنن. بر روی شاخه ها رشد می کنن. در اون مثل عیسی تاک هست که دنبال شاخه ها میگرده در کتاب خروج خدا اینگونه هست. او تاکی هست که به دنبال شاخه میگرده خدا بدون یک وسیله کار نمیکنه بنابراین خدا باید موسایش را پیدا میکرد اما وقتی پیدا میکنه و موسای خودش رو فرا میخونه و مأموریت میده باید او را متقاعد می کرد. باید به او میگفت موسی تو کسی نیستی تو کسی نیستی که بخوای این کارو بکنی وقتی این رو فهمیدی اون وقت کسی میشی که من میتونم استفاده کنم تو کسی هستی که به وسیله او میتونم کار کنم و تو میتونی معجزات عظیمی رو بفهمی که به وسیله کسی انجام میدم که فهمیده کسی نیست خب دوستان وقت امروز ما به پایان رسیده لطفا دفعه بعدی هم با ما همراه باشید و در مطالعه کلام خدا در حالی که به داستان مهیج خروج ادامه میدیم، از یک دوست هم دعوت کنید که با ما همراه باشه. یادتون باشه مهمه که بفهمید ما هیچ کس نیستیم تا زمانی که خدا ما رو کسی بکنه که بتونه به کار بگیره. این نقشه خداست که قدرت خدا رو در قوم خدا به کار بگیره که هدفش رو بر اساس نقشه خدا به انجام برسونه. عزیزان های آیه احساس می کنید که هیچ کس نیستیم. برای کاری که خدا شما رو فراخونده تماما نالایق هستین؟ دوستان، شما در جای خوبی هستین. موسا میدونست که لیاقت نداره که قوم اسرائیل رو به سرزمین وعده هدایت کنه. این دقیقاً چیزی بود که خدا اون رو برای هدف مطلوب خودش که بتونه استفاده کنه کاندید کرد. دعای ما اینه که خدا این درسها رو بکار بگیره که ایمان شما رو تقویت کنه تا به این درک برسین که کلام خدا رو در زندگیتون بپذیرین باشه که خدا پدر ما به شما طاقت و امید و روح اتحاد با بدن مسیح بدهد تا قوت خدا رو در زندگیتون تجربه کنین تا اون بتونه هدف خودش رو بر اساس نقشه در زندگی شما به عنوان پیروبان ایسای مسیح به انجام برسونه آمین